اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد محمد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد وعلى على محمد معنج فرج الحمدلله تا هنوز دو قسمت از سه قسمت اومده مواحث نام تجوید رو خواندیم کل تجوید چند تا بحث اومده داشتم سه بحث شد در امور کلمات عربی شان یاد ما هست مخارج حروف عربی اهم مباحثی در علم تجوید مسئله حروف عربیه ماها دررس اهم مباحثی علم تجوید قواعد تجوید مخارج حروف عربی شما یول ما خارجی ال... ما ال... یا المخارج ما خارجی ما خروف دو آه، لغت‌های عربی استفاده می‌شودن؟ استفاده لغتی لغت‌های آه، استفاده لغت عربی. لغت‌های عربی. در تعداد شما نیک تابوی تجدیدی رکی بخوانیم چیک تابوی فارسی باشه تابوی عربی ممکن است که. بحث احکام حروف رو تحت همو مبحث صفات بیارن یعنی بنان احکام یاد نکنن درست شد ولی در بعضی از کتاب‌های تجویدی همه قسمت سوم یعنی صفات عارضی رو در بخش احکام آوردهن مخارج حروف صفات حروف و احکام حروف یعنی وقتی میگن صفات حروف منظرش فقط همه صفات های ذاتی است صفات های ذاتی چند تا بودن کلگشان؟ سه صفات ذاتی؟ یکی بوده هفت یکی یکی بعضیشون که داشت و پنج و پنج میشه ده هفت دیگه کلگشان؟ وقتی از زد نیه پنج پنج و پنج ده هفت دیگه هم؟ هفته دیتا درستا؟ حالا ما صفات عرضی رو میخوانیم منطقه تحت احکام خروف حالا پیمه گیریم از این به بعد درست شد یعنی المبحث الثالث یا بحث سوم ما و شما چه؟ احکام خروف احکام خروف برای خود بینمیسیم؟ احکام خروف Gideyim ben قبلا داشتن دیگه ı tarzına حروف میتونید داخل tarzı kablan dostun dege ama ahkamul huruf metuned یک بعضی تعبیرات دیگه هم در تجوید هست صفات, ال... صفات العرضیه بعضی تعبیرات و واجه های دیگه هم در تجوید هست که اگر با آن آشنا بشیم فکرمون خوب هست و آن حق الحروف و مستحق الحروف هست ساکیام درانجی آه، آرزیه یا نه، عرزیه. صفات العربیه دقت میکنین ما یکی حق الحروف داریم یا حق حرفی حرف مستحق الحرف حرف هر حرفی، توجه کنید، هر حرفی، سه تا امو سه تا بخش که گفتیم رو داره یکی مخرجش ها. واقعا از مخرجش باید ادا بشونید، درست یکم حقش، هم. حقش یعنی یعنی همه صفات های ذاتی از حقش هست که اگر او صفات ذاتی رو ما یعنی حقش رو ندیم اون حرف حرف درست در نمید صحیح شد با. پس زف... آ... مخرج حرف و صفات حرف جزء لازمه هر حرف است متوجه شدیم یعنی اگر حرف صاد را از مخرجش ادا نکنیم و صیفت استعلارم بهش ندیم. درست دیگه اون ساد از حالت ساد بودن خارج میشه ممکنه تبدیل بسیم شد. سه؟ پس مخرجش واضح حق حرفم واضح شد. درستم؟ فاهمیدیم یا نه؟ خب کلمه بعدی که علمای تجوید نسبت به حروف به کار میبره مستحقه. مستحق مست... کلمه مستحق هست مستحق حرفی یا مستحق خروف مستحق یعنی چی؟ یعنی حقشه که بهش میدیم او که ایچه. اگر حقش رو ندیم دیگه کلمه از کلمه که باید اداوشه از او خارج میشه بخیر درست اما همی واجه همی یک تک حرفی گاهیست که بعضی موارد دیگر رو هم از استحقاقش میرسد میرسد که با اون و صفات ذاتی یک چیز اضافی که بهش میرسه رو بهش مگر مستحق حقش را اگر ندیم کلمه کاملا عوض میشه مستحق چیست ممکن کلمه عوض نشود ولی آن گونه ای که باید باشد هم نمیشود چرا چنینه؟ یعنی چرا اینا او را حق میگه ای مستحق میگه؟ بخاطره که این مستحق دائمی نیست. گاهی بهش میرسه گاهیش نمیرسه. برستان؟ یعنی وقت کلمه ترکیب میشه واژه در کنار واجهی دیگه قرار میگیره، این استحقاقات گاهی بهش پیدا میشه گاهی بهش پیدا نمیشه. مثلا بحث ادغام در یرملون هست در غیر یرملون اصلا نیست پس ادغام یک چی صفت استحقاقی است که فقط در وقت یرملون به حروف میرسد به حروف قمری در غیر آن نمیرسد. نمی‌رسد فامید می, آل فا می, می هارم؟ آره پس ما خارج حروف داریم حقوق یا حق حرف داریم و مستحق حرف داریم. درست؟ خب ما گفتیم که احکام حروف رو پای میگیریم خود احکام رو اگر تعریف کنیم بد نیست. ببینیم هیا هیا تغییرات مختلف تغییرات مختلف نمی‌شدم. که آره آره آره دو پیش مخربانی را بل آره. تصيب الكلمة عند تركيبه فايندا او عند تركيبها عند تركيبها مع غيرها مغا غیری ها مغا خوب همین مقدار کافی است میشه هیه تغییرات و تصيب تصیب الكلمة عند ترکیب ها مغا ها به اینجا توجه کنین گو ای احکام حروف یا صفات عرضی حروف چیست؟ یا به تعبیر دیگه همون مستحق حرف چیست؟ برشت چون ما سه دیگه مخارج حق مستحق احکام حروف یا صفات عرضی حروف یا مستحق حرف چیست؟ جواب میده یا یعنی این احکام حرف است که این تغییرات مختلفه. تغییرات مختلفه تغییراتی است که با هم اختلاف داره این تغییر خب بعد چی تصيب الكلمته این تغییرات به کلمه اصابت میکنه اگه بخویم کلمه و کلمه ترجمه کنیم تصيب الكلمته یعنی نصیب کلمه میشه تصيب نصیب منم تو تصيب الكلمته نصیب کلمه یا به کلمه اصابت میکنه کی به کلمه این تغییرات مختلفه اصابت میکنه عند ترکیبی ها وقتی ترکیب همو کلمه مع غیرها با غیر خودش یک بار دیگرم ترجمان اجاب دقیقت واضح میشه احکام هیا یعنی احکام حروف تغییرات گوناگونی است که نصیب کلمه میشود زمانی ترکیب و یک جای شدن اون کلمه با غیر خودش نصب خود ترکیب نمتنیب. نمتنیب. وقت کلمه با غیر خودش. با غیر خودش. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثال شام و ها مثالش واضح هست دقت کنیم نه مثال لازم نست به تغییرات دقت کنیم ما شما میخوانیم هی تغییراتون مختلفتون خب تا کنیم کنیم تغییراتم مختلفتون اینجا توم میخوانیم اینجا تون میخوانیم اینمی واجعی ته که اینجا تنوین داره چون در کنار میم هست کدم حق را گرفته از استحقاق را گرفته؟ میم اونجا که چی می یک دانه میم اضافه می رن صحیح حرف میم با ت ترکیب شد اینجا مستحق شد گفته می شد چون ت تنوین داره در کنار میم هست درست تغییراتون را توم ولی اینجا مختلفاتون این ت بازم هم تنوین داره چرا اینجرا توم نمیخوایم با خاطر کی طرفش میم نیست صحیح شد پس تنوین ببین تنوین در این ت اگر در کنار میم آمد یک استحقاق اضافی میگیره مستحق مستحق نشه درست شد چی میگن اقلاب میگه چه میگن اقلاب اقلاب تانو شنیدیم یا نه درسته اینجا در چون در کنار میمه یک استحقاق اضافی به نام اقلاب را میگیرد ولی در اینجا که بازم هم تنوین را دارد چون در کنار میم نیست او اقلاب را نمیگیرد حال فایدیم حق و مستحق چیست فاومده ام نه؟ هستی؟ تغییرات نیست که نصیب کلمه میشه وقت ترکیب اون کلمه با غیرش. واضحه یا نیست؟ نه نه. کلیگه نه؟ آه خیلی آنه. خب، اینالی، وقت ما شما خود تعریف احکام رو فیاسی فاط عرضی را متوجه شدیم یا منظور از بخش را متوجه شدیم، یکی یکی اقسام یا همون مباحثی که تحت احکام حروف میخوانیم رو دنبال میکنیم برست؟ انشالله اولین بحثی که تحت احکام حروف میخوانیم بینویسین باب و تفخیم و ترقیق اقسام چیان بدانیم آجام ها؟ <تصفح> یک آه. یک آه. آه. باب و تفخیم باب و باب و تفخیم و ترقیق, و ترقیق در کتاب های فارسی باب نویشتا نمیکنن کنن ممکنه در بعض کتاب های عربی هم باب نویشتا نکنن ولی در بعض جاها ها می حتی در قسمت وقف و ابتدا هم همطوره به شکل باب و وقف و ابتدا این شه می خب باب به معنی دروازه و رودگاهیست دیگه درسته؟ باب, باب و تفخیم و ترقیق یعنی یکی از اقسام که ما تحت عنوان احکام حروف خروف میخوانیم همین تفخیم و ترقیق و یکی از اقسام یکی از اقسام احکام و خروف میدنیست. دانه موقع یک یک آره کافیست دیگه لازم هم نسخی نیسه مالا میخوایی بگیم احکام حروف احکام حروف احکام حروف یکی از احکام حروف احکام, چون... احکام حروف را کشتر بفتیم نه؟ احکام حروف شامل چندتا تا بحث هست. یکی از مباحثش تفخیم و ترقیق هست آدف یعنی که از امکام حروف خب پس اینجا دو تا کلمه داریم یکی تفخیم یکی ترقیق تفخیم و ترقیق داریم تفخیم رو تعریف کنیم از تفخیم ببینید از تفخیم یعنی از التفخ... تفخیم لغتم لغتا به که ات تصمیم ات تخخیم و لغت هم های ات تخخیم ات تصمیم ات تصمیم که می دیدیم که روش نویشته سمن و این تصمیم و نمو سامانی یعنی چی یعنی یعنی چوپ پور صحیح شد تفخیم در لغت دامن تسمین هست یعنی پور فهمیدین او گوسفند که چوپ باشه پور دیگه میگن یعنی صحیح شد بادگاد تفخیم در لغت دامن تسمین تسمین یعنی پور تسمین یکی از تفخیم هست برای نه، از یک فقط تسمیل، ات تسمیل، لغتاً در لغت پور هست شد، معنی فرسی، تسمیل پور در اصطلاح، واسطلاحاً، واسطلاحاً، یعنی سن، واسطلاحاً؟ هو تغلیر، هو تغلیز و زوی نشد. هو تغلیز و هو تغلیز و اصطلاحا هوا یا تفخیم داره و میخوانیم ترقیخش تازه مانده هم. تقلیز و و در لغت تفخیم در, در اصطلاحا اه واصطلاحا هو تغليز الحرف هو تغليظ الحرف عند النطق به هو هو تغليز عند النطق غير الحرف عند النطق به زل زوی پیش می کنید جا تغلیزو حرفه آه واندن تا گونه یک دفعه ترجمه کنیم نشیم یا نه در اصطلاح تفخیم عبارت است تقلیز هست تقلیز یعنی غلیز و آوازم پوری هست دیگه نه پر کردن تقلیز حرف است وقتی در نطق بهی یعنی هنگام ادای همون حرف حرف رو وقتی ادا کنیم وقتی کردیم کردید اونم موشه تفخیم الادغام الحرفان السلاميتان هذا هو الاستماليه ادایان ساده اگر هو یعنی همون تفخیم تقليص یعنی جليس کردن حرف است هنگام ادای هم هر حرف همگام عدا آن حرف بله وقتی حرف رو عدا کردیم که می غلیز کردیم مو شد تفخیم پر بخانیم سعی شد؟ <تصفح> یعنی خود فم یا دهن فم رو خود میدانیم نه؟ فم یعنی دهن پر از هوا میشه وقتی پر از هوا شد پوره دیگه پور. و نمو تفخیم سعی شد؟ تمام یا نه؟ خوام. هم هم هم. هم هم هم. هم هم هم. هم هم هم. هم اگر نمیشه باشه بد نیست یا مربوط یعنی عدد یکو اه مربوط تفخیمش تا زمشه ترقیقش هم ورده الاحرف ان وان اخن الاحرف مفخمه مفخمه ان وان یک مفخمون مفخمون دائما مفخمون دائما پیشرفت نقطه بینی سن بعد بینی سر بالای سر مفخم تشدیده یا پیش؟ پیش پیش ایه بله خه تشدیده بالای میم دو دانه چی هست؟ الاستعلام نویشتی؟ ال احرف المفخمتو مفخم مفخمون دائما الاستعلام دو استعلام استعلام استعلا مفخم مفخمتو دیگم؟ آره دو <تصفيق> مفخم أحياناً مفخم أحياناً أحياناً دبونيش بنويسن ألف الالف الألف واللام والباء نوال ب. الألف واللام والباء. أحياناً أحياناً أحياناً. آه مصاهم أحياناً. الألف واللام والراء. أحياناً. ماذا أحياناً؟ والراء. الیف واره واره واره واره خب سعی کنیم ما تفخیم را گفته بودیم وقتی که ادا میکنیم خود فم پور از هوا میشن و شد پر ادا میشن اینال احروف یعنی حروف ها حروف که مفخمه هستند یعنی حروف که پر ادا میشن دو گونه میشن یک, یک گونه این حروف دائما تفخیم میشن یعنی دائما پر خوانده میشن و او حروف که دائما پور خوانده میشه حروف استعلاست خود اره اگر اه اه یاد ما مانده باشم خاو و صاد و زاد زاد و و غین و ق و سته و زوی د حروف اسلا به صفات خواندم دیگه حروف اول اول بخش و صفات ذاتی بود که استعلا خونده آه مقابل زدش چی بودن؟ استیفال بود درست شد؟ استعلا مقتمی زدش استفال بود آه استفال آره دقیق میکنیم حروف استعلا دائما تفخیم میشه یعنی هر جای حروف استعلا بود باید با دهن پر از هوا عدا بشه. درست اما یک تعداد از حروف داریم که احیانا تفخیم میشه یعنی گاهی گاهی تفخیم میشه درست شد در صورتی که شرطش موجود باشه تفخیم میشه در صورتی که شرطش موجود نباشه تفخیم نمیشه, نمیشه. درست شد و او کدام اون حروف حرف علیف است یک حرف لام است دو حرف راه است سه این حروف از جمله حروف است که گاهن تفخیم میشه گاهن تفخیم نمیشه حالا امروز که نمیتونیم بهشان به کلی وزنا برسیم شایلا احسا هستان میرسیم منطقیب نمونه را بگیم اینا که خوب واضح باشن بسم الله را چی بگیم؟ بسم الله ترقیم بگو عدا کن بسم الله الرحمن الرحیم آره این دفع قل هو الله را بخون؟ قل هو الله احد ببین الله در بسم الله ترقیق هست اما در, چه? در صدق, صدق الله و در قل هو الله احد چیه؟ قور یا تفخیم بخاطر که هر همیشه میگه بیش از حرف بخاطر کلمه الله بیه که در چند جای تفخیم داری؟ همون ببین الیف لام و را این گناه هستند گاه تفخیم میشن احيانا تفخيم میشن احيانا تفخيم نميشه پس اگه الفا میدیم که تفخیم چیست پس در کل اگر که از ما بپرسد تفخیم چند تا حرف دارن چی چی میگیم تفخیم ها نميشه حرف اون بالا میشه استعلا میشن اون دارن ده تا پس حروف مفخمه در کل چند تا ده, ده. ده تا هفت تا ایش دائما تفخیم سه تا ایش احیانا تفقیم و صلی الله علیه سیدنا محمد و